زبونه خون خوب مزه کرد نا دونا اخلاق لاریج بردا کرد نا فهمی نفهمیده میرین کوچه بکشتی گله شسته ناخوده به تریکی گوم رو به پلیش برن روم میشی و ول هر چی بشی ناشی از افکار کازه فرشته سمت چپ تمام آدور کته بگو کی بوردی در حال واسری هستش تو بالا نمیرا به در تو چه بوی خون میای از اطراف خوشدور جمعی میشه هر هدف. رنگ سرخ گرفته و خود حرکت زمین نابود گرفته و خود حرکت بازی سی اس ای رو بروان. اجتماع در رو به فقات نمیری سی هم آدم دیریسیات تو فرسود امروزی دست نمیرسی بیروسی ما هم چی بگم را اشتواه اعتراض کن بلند باز کنه اعتبار این فجور انطور نداره افتخار دولت خواهی باز داره اقتدارهای غیام کن بگیر اقیق خور سر بگیر و صحف خور